دعای ما این است که این ترجمه منشه برکات و سمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. انجیل یوحنا فصل اول در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود. و کلمه خود خدا بود، از ازل کلمه با خدا بود، همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد، حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود، نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. مردی به نام یحیا ظاهر شد که فرستاده خدا بود او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا به وسیله او همه ایمان بیاورند او خود آن نور نبود بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می‌کند در حال آمدن بود او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد اما جهان او را نشناخت او به قلم روی خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردن این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند که نمانند تولدهای معمولی و در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی بلکه از خدا تولد یافتند پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید ما شکوه و جلالش را دیدیم شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی شهادت یحیی این بود که فریاد میزد و میگفت این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من میآید. اما بر من برتری و تقدم دارد زیرا پیش از تولد من او وجود داشت از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد کسی هرگز خدا را ندیده است اما آن فرزند یگانهی که در ذات پدر و از همه به او نزدیک تر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیا، وقتی یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت. من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدن، پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد، خیر. آنها پرسیدن، آیا تو آن پیامبر معود هستی؟ پاسخ داد، خیر. پرسیدن، پس کی هستی؟ ما باید به فرستاندگان خود جواب بدهیم، درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیای نبی پاسخ داده گفت من صدای ندا ای هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودن، از او پرسیدند اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر معود، پس چرا تعمید می دهیم؟ پاسخ داد، من با آب تعمید می دهم. اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمیشناسید. او بعد از من می آید ولی من حتی شایستیان نیستم که بند کفش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا یعنی آن طرف رود اردن در حالی که یهیا مردم را تعمید می داد واقع شد. روز بعد وقتی یهیا ایسا را دید که به طرف او می گفت نگاه کنید. این است آن بره خدا که گناهان جهان را برمیدارد. این است آن کسی که دربارش گفتم که بعد از من مردی میآید که بر من تقدم و برتری دارد زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمیشناختم اما آمدم تا با آب تمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد. من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمیشناختم اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم، به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت میدهم که او پسر خداست، روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد گفت این است بره خدا آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند از آنها پرسید به دنبال چه گردید؟ آنها گفتند ربی یعنی ای استاد منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندن زیرا تقریبا ساعت چهار بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیاب به دنبال عیسی رفت اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیه یعنی مسیح را یافته ایم پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا ولی بعد از این کیفا یا پتروس به معنی سخره نامیده می شوی. روز بعد وقتی ایسا میخواست به جلیل برود فیلیپس را یافته به او گفت به دنبال من بیا فیلیپس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت صیدا بود فیلیپس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید فیلپوس جواب داد بیا و ببین وقتی عیسی نتنائی را دید که به طرف او میآید گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در اون مکری وجود ندارد نتنائیل پرسید من را از کجا میشناسی؟ عیسی جواب داد پیش از که فیلپوس تو را صدا کند وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم نتنائیل گفت ای استاد تو پسر خدا هستی تو پادشاه اسرائیل می باشی؟ ایسا در جواب گفت، آیا فقط به علت اینکه به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت، یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان سعود و نزول می خواهید دید.